أوزب الله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلّى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صلّى على محمد و آله بحث حدیث پنجم رو ادامه میدیم پیگیری میکنیم جلسه قبل یه چند دقیقه در موردش صحبت کردیم سند و متنش رو خوندیم حالا امروز کارهای فنی روی سند و متن حدیث پنجم رو انشالله با همدیگه انجام بدیم من سند حدیث رو با این نرم افصار اکس ماین تازگی من بهش مسلط شدم خیلی خوشم اومد ازش چیز خوبیه برای رو ببینید این نرم افزار قشنگ میتونه این حالتهای شجرهی ای رو خیلی راحت نموداری و امثال اینها رو خیلی به سهولت و سری برای شما انجام بده اگر تونستید از این استفاده کنید روش کارش هم ایکس آره اکس مایند اره اینه اکس مایند در مفصارش خیلی هم راحت کار هم سخت نیست تو گوشی هم هست آره من چون گوشی اینقدر چیز نداره من تو لپتاپ کار کردم خب ببینید حدیث ما سندش قشن به این راحتی بعد خوبی اون نه مفصل اینه که نمودار هر جوری شد، اون خودش درستش می کنه لازم نیستی که شما ازیاتشی هر ای هر جاش هر جوری هست انجام میده. خب هر به هر حال این حدیث پنجام از چشی هست که ما با چشی ارتباط داریم. چشی می که محمد ابن مسعود ابن محمد همون عیاشی هست. علی ابن محمد ابن فیروزان القمي این علی ابن محمد ابن فیروزان قمی در وصال شیعه جلسه قبل دیدید محمد و علیش رو جابجا جا نوشته بود شیخ حر عاملی نسخهش محمد ابن علی رو محمد علی رو نوشته بود که علی ابن محمد گویا درسته حالا مراجعه کردیم حالا الان نشد میاد خدمتتون که نسخه وسایل به هر حال درست نیست شاید هم نسخه ما از وسایل درست نیست. یعنی خود شیخ درست نمشته. این وسائلی که ما داریم اشتباه هست. من یه گزارشی ازش در رجال شیخ خوندم. کسی رو روایه هست. این آقای علی ابن محمد بن فیروزان قومی. کسی رو روایه. یوچن ناابل حسن کانم مقیمن به چش. این جلسه قبل که پرسیدم این آقا قومی هست. ولی خیلی نمیشناسیم. سرش همینه ایشون مقیمه چش بوده و قشن مرتبط میکنه ما رو با چش از اون به بالاتر احمد ابن محمد ابن خالد همین آقای برقی خودمون بله چه دیگه چون مشهور هست من اینجا ننوشتم شما این رو دیدید احمد ابن محمد ابن ابی نصر ایشون هم آقای بزنتی هست و آخرین راوی که به امام وسله شخصی به اسم اسماعیل ابن جابر ما اینها رو الان دونه دونه بررسی می‌کنیم و بعد می‌ریم سراغ منابع این حدیث ببینیم در جاهای دیگه هم نقل شده یا نه بررسی رجالی بررسی فهرستی و بررسی اه... الا اطمینانی من نمی‌خوام اسم بذارم ما ببینید اصلا من اعتقادم اینه در اعتبار سنجی، حتی اسم گذاری هم خیلی لزومی نداشت. آقا روش رجالی، روش فهرستی، روش چیچی؟ چی؟ نه. این مثل همون اسمگذاری استاطلب و اصولگراست. همین ها زرره. آجان، شاره مقدس برای ما یه سری احکامی، دستوراتی، یه سری فرمایشاتی دارد. ما باید اونا رو پیدا کنیم. باید ببینیم اونها چی هن. به واقعش برسیم، و اگر دستور العمل عمل کنیم اگر هست هستونیسته به هست ها ما اعتقاد پیدا کنیم و اینها حالا این نمیدونم رجالی هست این فهرست اینا من به نظرم میشه خیلی تو این فضا وارد نمیشدیم بهتر بود الان باید ببینیم این روایت رو واقعا امام صادق اگر فرموده است ما با چشم و دل این رو میپذیریم و طبقش عمل می‌کنیم یا بهش معتقد میشیم خیلی خوب این موارد رو چه بررسی کردیم بعدش وارد دلالت هم بشیم ببینیم دلالت این روایت چجوری هست خیلی خب معلومه دیگه باید برای بررسی رجالی ما وارد نرمفصار درایه بشیم البته نرمفصار درایه حالا این سوی تفاهم نشه باید یه پشتوانه ای داشته باشه بلا نرمفصار درایه بتن... شما فقط نرمفصار درایه رو بلد کاشی؟ این مزار کافی نیست به شما نمیگن رجالی شدید، رجال بلدیز. مطمئن تا ما دیگه سر کلاس که نمیتونیم تحقیق کنیم. ما سر کلاس اون نتیجه ها رو می بررسی کنیم. لذا شما ان کارهای رجالی و اینها رو خودتون یا مستقلاً بخونید یا من توصیه ام اینه که وارد یه دور تخصصی حدیث حتما بشین. حالا کجاش دیگه نمیدونم من. الان کجا خوبه ولی یه دور تخصصی حدیث حداقل یه سطح سه بگذرونید. اگر از من بپرسید میگم یه دور تخصصی حدیث بگذارونید، یه دور تخصصی چلام بگذارونید، یه دور تخصصی تفسیر بگذارونید، هر تخصصی هست بگذارونید تا اینها مهارت دیگه در راه دین شناسی هم خیلی به درد ما می‌خوره. حالا تخصصی حدیث به نظر من اجباریه، اصلا هر طلبه‌ای باید بگذرامد. خب. منظورم بود که کارهای رجالی اونها رو دیگه خودتون وارد بشید تخصصی حدیث اگر هم وارد نشدید حداقل همین کتابای که رجال و اینها به شما داده شده اونها رو خوب کار کنید رجال های صبانی دیگه حداقل باید خوب کار بشه تا یه دور بخونید ببینید چه خبر خیلی خوب آقا ما از نرم افزار می‌خوایم راحت استفاده کنیم جلسه قبل عرض کردم چشکی که نیست پس وارد وصال و شیعه خوشبختانه این حدیث هم در اونجا ر... زکس شده است حدیث چند بود سیو 13458 سی بود بنظرم آره سیو 13458 سی میخواد ببینیم این احادیث اصلا تو کدوم باب آورده برام شیخ ال اینها رو ما الان همین داریم روایت چشی رو اینجا نگاه میکنیم اینجا چه بابیه بنظرتون کدوم باب از فقه تهارت و اینا چه نیست چون در مورد اشخاص صحبت میکنه در مورد اینکه عرف و منازل رجال، ناس، شیعت حالا این هم داره میگه حدیث قبلی نامه علی ابن سویل از امام کازم علیه السلام اینا کجا میخوره باشه تو بساید بس و شیعه؟ بحث روایات، راوی، اینا کجا بود؟ کتاب القضا چرا؟ راوی به قضاوت چه ربطی داره؟ قاضیان و حاكمان با روایت قضاوت میکردن یعنی دو نفر میرفتن پیشش میگفتن من دعوا دارم این حقم رو نمیده اونم حق خودش رو میخواست روایت میخوندن میگفتن حکم خدا این است لذا تو چتاب القضاست حالا من بعد اینکه ببینید همینجا میزنم این رو ببینید باب و وجوب فل فلقضا و الفتفا روايات الحديث. پس این حتما باید یه بار میدیدیم ابواب و صفات القاضی و ما یجوز و ان آداب غازی کتاب القضا پس این حالا خوب شد که امروز دیدیم می رو تا یه وقت از دوستان کسی این رو سوزن نش نبود حتما حل بشه. بسیار خب روایت رو سندش رو این بیاره ببینیم چه جوریه حالا تا اون میاره اتصال سند رو نوشته مسنده منم اینجا تو این عکس براتون نشون دادم این مسنده یعنی از صاحب کتاب که چشیه هست تا خود امام صادق هیچ افتادگی نداریم بعد ارزیابی سندم ضعیف مهمل هست. ضعیف مهمل چرا باید ببینیم اوور خب ببینید اول شخص محمد بن عمر چشی که همون چشی خودمونه فی کتاب رجال. ان محمد بن مسعود همین عیاشی خودمونه ایشون هم آدم بزرگواری است دیگه ایشون رو نمیبینیم چون قبلا دیدیم محمد بن علی بن فیروزان قمی محمد ابن علی ابن فیروزان قومی اینجا چون سند رو آورده همون محمد ابن علی اوورده ولی الان بزنیم راوی بیاد ببینید روش این دیگه راست کلیک نیست این دیگه آره علی ابن محمد اوورده تو متن چششی هم همون علی ابن محمد بود حالا بذارید بریم تو صفحه راوی ها اونجا چی نمشته بود در مورد راوی؟ علیه ابن محمد ابن فیروزان قومی چیزی ننوشته ارزیابی نکرده این راوی رو خیلی خب بریم سراغ صفحه راوی علیه ابن محمد ابن فیروزان قومی شهنه در سمانیه عنوان میار علیه ابن محمد ابن فیروزان قومی لقبش القومی کنیش عبالحسن چیزی دیگه نداره و من تو این جلسات اون چیزی که خدمت شما ارز کردم این بود که دیگه معمولا اگر یه راوی هیچ جا اثری ازش نبود ولی مطمئن باشید تو کجا هست تو رجال توسی هست الان هم میبینید فقط تنها منبعمون رجال توسیه الان این تلاجم رو بزنیم ببینیم رجال توسی علی ابن محمد ابن فیروزان آقا تو این نرمحصار نمیرم برای من اینجوره یا همه اون راوی که اینجا عنوانش رو آورده شما میزنید تا منبعش باز بشه اون پایینه یه وقت گم نشید اونجا پایین رو بیارید علی ابن محمد ابن فیروزان القمی کسیر و روایه یکن نا اول حسن کانم مقیمن به چش. هرچی گذاره ما در مورد این راوی داریم فقط همینه از این وساقت و امامی بودنش در میاد یا نه؟ چسی رو روایت طرف بدی نیست خودش معیار میتونه باشه درسته چسی رو ولی باز بالاخره ممکنه چسی رو روایت باشه ولی سقه نباشه آه من اهل تش هستم هم من درسته اون بالایش هم همینطور علی ابن حسین اهل آن این سمرقنده سمرقند نگار شیخ توسی اون سمرقندی‌ها دیار اینجا آورده اون کتابم من خدمتتون arz کردم کتاب آشنایی با راویان مغاور و نخر بود چی بود اسمش آقا غلام نوشته آره اونم داره من یادم نبود اونو ببینم حالا الان میترسم دیر بشه ولی الان, الان میدیدیمش شما خودتون اون رو ببینید رو پیدا کنید ببینید بله صاحب و خراسان این نیشابور آره سمرغند آره اینا انگار شیخ توسی مثلا سمرغندگیارو یه جا جمع میکنه یا چه جوریه؟ آره. که یه شخصی آره شخصی باشه دلید به ساقت میشه؟ نه شوخی بود دیگه این, این که توجه یعنی این شخص مثلا اهل فران باشه یه جهت مصبت به ساقت برای افرادی که ما هیچ چیز کسی رو روای افراد. بل بل. روایت بل بله اگر بخوام من چند تا رو بزنم اجازه بده بنظر من بنظر من یه تکونی میدادم رو یعنی اگر مثلا به شما بگم یکی راوی اهل بصره است اما اون یکی راوی اهل کوفه است خب کوفی بیشتر شی از تا بصره دیگه از این جهت به درد میخوره آره از این رو روایت دیگه با اون بله الان این کسی رو روایه هست اهل چشم, چشم بوده ده. مخصوصا قومی هم هست ببین؟ قومی بوده کسی رو روایه بوده مقیم چشم بوده ولی ببین این جمع اینها هم به اطمینان ما را نمیتونه برسوده اما میشه گفت که بعید نیست بعید نیست این آقا سقیه امامی بوده یه چیز دیگه هم میشه ازش استفاده کرد که این سقه هست یا نه اینه که ببینیم چی ازش روایت کرده ببینید تا تو منابعه هیچی پیدا نکردید زود ولش نکنید بعضی هستن که لا یربونه ولا یورسلونه الا سقه تو اومده مواردش اینجوری هن. پس میخواد این رو ببینیم علی ابن فیروزان ببینیم چی ازش نقل میکنه کجا رو ببینیم آقای من میخواهیم راویان علی ابن فیروزان چیه؟ صفحه راوی. راوی رو می اه اینجا مطرش ریز که نیست. اینو بزرگتر این رو بزرگتر پنم میخورده؟ یه لحظه اجازه بدید من. از این تنظیمات کجاستم؟ بکنم اینجا باشه بهتر شد بهتر شد خیلی خوب آقا قسمت راوی شیخ و شاگرد بله این آقای علی ابن محمد ابن فیروزان رواعن الان اینجا روان ان چی بود؟ فیروزان روا از احمد بن محمد بن خالد. ببینیم رواه ایشون هست. بله احمد محمد و عیسای اشعری، احمد محمد بن خالد برقی، عبدالله الله ابن محمد بن عیسای اشعری، محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، محمد بن عبدالجبار قومی. استاداش قمی اند. می‌بینین؟ اینا ببینید هرکدوم از اینا میتونه یه سر نخ ما باشه. وقتی یه نفر استاداش قومی هستند، هم مثلا یه شاگردای خوبی هستند، ممکنه یه مقدار براما یه اعتباری ایجاد کنه. هرچند این نرم افسار به این نرسیده. حالا ببینیم شاگرداش چی هستند؟ رواعنه محمد ابن مسعود ایاشی. زو... هیچ موردی نداریم غیر از ایاشی. سیزده تا، حالا چند تا شم شاید تکراری باشه، بله؟ ایاشی رو من همچین گذاره یادم نیست که بگن لا یربی و لا یور سلیل اون شیخ توسی که میگه بگه صفان هست بزنتی هست و ابن عبی ولی به هر حال میشه بررسی کنه ببینه عیاشی راویانش توش چند تا ضعیف قطعی داریم اگر زیاد بودن دیگه به درد نمیخوره. خیلی خوب به هر حال بله ایاشی مستبسر شد دیگه درسته منتهى این روایات و اینا در راستای شیعه است اینا دیگه این چند تا روایت اول چشی انصافا جزء روایات تند یعنی همون روایت جلسه قبل یادتون هست دیگه لعنت خدا و لعنت رسول و لعنت من و شیعیان ما بر این اهل سنت اینا خائنن فلانن اینها بعید مال قبل از استفسارشون باشه بسیار خوب پس آقا علی ابن محمد ابن فیروزان گویا در موردش مطلب نداریم همینی که شیخ توسی گفته در رجالش و نرمفسار از این نتونسته استفاده وساقت رو داشته باشه این از ایشون اما ادامه بدیم علی ابن بله، الگی ابن محمد ابن فیروزان این از اشکالات در مفساره این پایین الان با نمیدونم این سفید. قسمت سفید برای شو بازه احمد ابن محمد ابن خالد برقی خب بزنیم دوباره بیاد دیگه احمد ابن محمد ابن عبی نصر ایشون هم که جزوه بزرگان هست ایشونو نمیبینیم اسماعیل ابن جابر این رو ببینیم اسماعیل ابن جابر کوفی پس آقا اشکال این سند از ناحیه چی شد آره علی ابن محمد ابن فیروزان حالا من دیدید دیگه از چند زاویه براتون دریچه‌های مختلف باز کردم بعضی هاشون میشه ادامه داد میشه به نتایجی رسید تازه یه چیزی دیگه عرض کنم این نرمفصار خب اطلاعاتی که داره محدوده. شما میتونید در یک های خیلی بیشتری جستجو کنید. مثلا یک نرمفصار دیگری که ما داریم نرمفصار کتابخانه رجال شیعه و اهل سنت. دونم با اینم آشنا هستید یا نه. این دیگه کتابخانه است. این دیگه مثل درایه کار دانشنامهی نداره. فرا کتابخانه است. حالا در حد همون جستجو اینها رو داره. ولی خب کتاباش خیلی فراوان. مثلا همینجا ما میتونیم تو این قسمت جستجو علی ابن محمد بده فیروزان رو بگردیم ببینیم چقدر اطلاعات داره. یه لحظه من فقط بذارید اینو جستجو کنم. همین فیروزان میزنم. فیروزان چون عبارت فیروزان خیلی عبارت رایجی نیست. من اولین بار هست تقریبا میشناسم. بذار چند جا داریم. سی و جستجو جواب آورد برای شما تو این سی صفحه حتما یه چیزایی پیدا می کنید که اولیش علی ابن محمد فیروزان موجم رجال حدیث های خود. تاریخ مدینه دمش آنه این فیروز چیز دیگه است آره اون فیروزان رو باید بزنیم دقیق تر باشه نه علی ابن محمد فیروزان قومی آره اینا رو بزنید دیگه این اضافات میره كتاب... آره میدونم اینو زدم چند دقیق کتابش دسته بندی بشه ببینیم تو چند تا آه کتابش فقط چهار صفحه شد الان مثلا ممکنه آره فیروزان الان ریاز المحدثی آجا این کتاب ها به چه در مثلا ما چیش کتاب اصلی بیشتر نداریم اونا کتاب های رجال و فهرست ما ولی در سایر کتاب ها ممکنه گزارهی باشه که هاچی از وساقت راوی باشه دیگه اگر معتبر بود اطمینان بیشتر حاصل میشه اگر معتبر نبود زنی حاصل میشه جمع میکنیم همش رو به اطمینان میرسیم دیگه این همه زحمت کشتن کتاب نمیشتم یا به چه درد میخوره <تصفح> چهار صفحه درستجوی کتابی شد نه ببینید حتی بعضا تو اهل سنت هم میبینید الان مثلا میزان خب اینا فیروزان نیست آره فیروزان ها رو حالا اینجا یه چیزایی هست یک قید و قیودی هست بزنید تو جستجو فقط فیروزان رو میاره دیگه میگم چون الان وقت این تحقیق الان نیست لذا ما نمیخوایم. الان اصانید چتاب کافی علی ابن محمد فیروزان زبدت المقال ترایف المقال اینا همش مطلب داره دیگه شاید توش یه چیزی باشه که بتونیم ازش وساقت رو استفاده کنیم. الان ببین نصوص و والتعدیل قلاصتا و تدراسه تقی... و تحقیق علیربر محمد بن فیروزان و قومی قمی قال التوسی بشنهی چسیرو روایت فلان اینا قشن میشه اینا رو کار کرد اسناد کافی بود حالا آیا این شص تو کافی هست یا نه اون ی... که بس بود کتاب اسناد کافی آره آره آره اما از اسناد کافی بود سه تا دیگه چون که کل اینا مثلا در روایت صحیح نمی کنه. روایت صحیح به معنی نیست که همه راویانش خوبن. این اشتباه رو نکنید هیچ وقت. ببین اگر ب... اگر روایات کلینی همش رو هم صحیح بدانیم همش رو هم این اشتباهه که بگیم پس راویانش سقم. این رو دقت باید بشه. هر چند خدا همین مبنا داره خود بعضی از بزرگان همین رو قائلن. میگن چون کلینی هزار تا دو هزار تا از فلان سهل ابن زیاد مثلا نهاد کرده پس سهل ابن زیاد آدم خوبیه میگیم نه معلوم میشه اون کتاب سهل ابن زیاد نسخه خوبی بوده این روایاتش درست بودن خود سهل ابن زیاد معلوم نیست چون شاید کلینی دو هزار تاشو آورده سه هزار تاشو ریخته دور از کجا میدونیم خیلی خوب آقا اینو تمام کنیم اسمایل ابن جابر صفحه راوی امامی سقه اینجا ازیابی کرده صفحه راوی رو ببینیم ها این دوگه انگار منبشت زیاده رجال توصی، برخی نجاشی فهرست نداریم فهرست نداریم خب حالا همین که رجال همین که اسم نجاشی رو این اینجا دیدید یه استخاده بکنید بلوم شکن آقا کتاب داشته اسمایل ابن جابر خب بذارید من تراجم رو باز کنم ببینیم فهرست طوسی داره فهرست طوسی هم مطلب داره ببینیم اسماعیل بن جابر له کتابن بله اخبار نابهی ابن ابي جید ابن الولید از صفار از محمد بن عیسی بن عبید عن صفوان عن جابر حمید بن زیار از قاسم ابن اسماعیل قریشی از اسماعیل بن جابر دوباره خب این تعبیر فهرست طوسی نجاشی ببینیم توش وثاقت نگفته بودا ببینیم ببینیم نجاشی چه گفته بعد با دوباره می‌بینی پایینه بریم این پایین ببینیم اسماعیل بن جابر روان عن ابی جعفر امام باقر و ابی عبدالله علیه السلام هو روا حدیث الا اذان حدیث اذان از میتونیم کافی رو بگردیم یا وسایل رو بگردیم ببینیم اسماعیل بن جابر تو چتاب و الصلاه اون قسمت اذان هست یا نه این حرف چش... حرف نجاشی تایید می‌شه لا هو ذکر ذکره محمد ابن الحسن ابن الولید فی فرسته دیدید طوسی هم ابن ولید بود تو طریقش اخبار ابن ابوالحسن علی ابن احمد محمد ابن حسن فلان صفوان ابن یحیی از آقای اسماعیل ابن جابر آره مایستم و مهاذر این اشتباه نکنید تا این اونجا تموم شده این برای آغاز بخش جدید هست که یه تعبیلی یه خطون توضیح داره این مربوط به این اسمایل ابن جابر نبود خیلی خوب آقا در مورد این آقای اسمایل ابن جابر رجال توسی رو هم باید ببینیم اسمایل ابن جابر خسامی گفته میبینین اسماعيله بن جابر خسعمی الکوفی ثقه ممدوح ها این سقه رو چه گفت رجالی میگه آهن من, من حله رو من رفتم امامیه سقه باشه کافیه له اصول رواها عنه صفوان بن یحیی این رجال شیخ توسیه یه چیزی رو اونجا باید ببینم من الان چی رو ببینم تو فهرس نگاه کنید ببینید این طبقه کدوم امامه اسماعیل بن جابر خسعمی بابل همزه هست، اصحاب ابی جعفر محمد بن علی ابن حسین، اصحاب امام باقر ورده اونجا هم گفته بود از امام باقر نقل داره پس خیلی خوب آقا این شخص گویا سره هست و مشکلی از جهت ایشون نیست البته این برای بله تحقیق و کار جای بیشتر از اینها هم داره از جهت سندی متاسفانه آقای فیروزان علی ابن محمد ابن فیروزان رو ما نتونستیم وساقت شد در بیاریم لذا بقیهش هر کسی میخواد باشه برای یک رجالی از حجیت ساقت میشه <تصفح> هم این تعبیر محمل برای اون شخصی میاره که اصلا هیچ تعبیری در موردش وارد نشده باشه بله محمد. محمد یعنی در موردش مطلب نمی بردن دیگه منشون نمی دونیم ممکنه اسمش هم اومده باشه برایش گفتم ببینید یه وقت هست خیلی مهمه ها یه وقت هست یه راوی اصلا در منابع ما اسمی هم ازش نیامده این خیلی اوزاش خرابه چون اینجا اصلا ذات همچین راوی معلوم نیست باشه ممکنه یه وجود ساختگی باشه اما یه وقت رجالی ها میگن فلان ابن فلان آره ولی نمیدونیم سقه هست یا نه اون خود شخص اثبات میشه که هست لذا این دوتا با هم فرده اگر یه راوی هیچ جا نبود حتی تو رجال شیختوسی هم دیدید اسمش نیامده اون یه مقدار مشکله آقای مرددی من یادمه یه زمانی درسشون میرفتم یه در مدتی ایشون یه داشت داشتالا نمیرم درسته یا نه این برحال ایشون استاد ده ما بودن دیگه. ا ایشون میگفت که بعضی از اساتیده و مشایخ شیخ صدوق اشخاص ساختگی هستن ایشون برای چه سندهاش خالی نباشه چی ازش نپذیرن ایشون یه سری اسمارو همینجوری اونجا ذکر کرده و سند رو واسه کرده به امام <تصفيق> این تعبیر اوی مدری بود نمیدونم درسته یا نه حالا دقیقی یه استایی داره احتمال این رو میده دیگه حالا همچین شخصی دیگه نه اسمی ازش تو کتاب رجالی هستنه هیچی بله؟ خب نه اون توجیح داره اون توجیح داره شوخی نمیدنم دیگه نه خیله خب کنفیتش میتونید اگه تغربند امامیه؟ ببین 80 درصد اینا نمیشه نه کوفیا 80 درصدش هم امامی نبودن ولی بیا زنده 20 درصد 30 درصد خب خودش خیلیه بعد از اینورم از امام صادق نعل میکنه اینم یه 34 درصد میبره رو بعد از اونور احمد ابن بزنتی ازش اش نعل میکنه بزنتی از چه سایی که لا یرمون ولا یورسلون الهن سغه اینو اگه قاعده رو بپزید اینم کمک میکنه همه اینها هست دیگه خیلی خب از بررسی رجالیش ردشیم ها آقا این این روایت ها من خیلی وقت بررسی فهرستی رو نمیگم تو این روایت ها علتش اینه که اضافه پیدا کردن این چه حدیث ها از کدوم یکی از این چتاب کتاب کدومی از این بزرگان هست یه مقدار سخته الان تو همین حدیث آقای عیاشی کتاب داره کلی محمد، علی ابن محمد بن فیروزان تو فهرست توسیون نجاشی نبود پس احتمالا بگید یا کتاب نداشته و یا داشته منطقه چشیه تو چش کتاب هم باشه اینا شاید مطلب نشدن خب پس این ای الان خراب کرد این الان کار ما رو خراب کرد از اونور خالد برقی کتاب داره کلی ولی من از کجا بدونم این حدیث از او نقل شده یا نه از کتاب چون قبلیش بزنتی هم داره اسمایل ابن جابر هم داره و موضوعش هم موضوع خاصی نیست مثلا یه وقت هست در مورد ازان بود و من میگفتن آره این کتاب و دیگه حالا ببین کدوم یکی از اینا کتاب و سلات دارن از همون ولی این در مورد یک مطلبی است که میگه آدلهایی دین خدا رو حفظ میکنن این من نمیدونم چه عنوانی هست شاید البته باز آدم بیشتر کار کنه بتونه تشخیص ولی الان من نمیتونم تشخیص بدم به نظرم کار سختیه بحث فهرستی رو من یه بار شاید جواد شو بیری بودیم اونها میگفتن کار سختیه یعنی بحث فهرستی کار سختیه من هر زمینه نه تو کافی الان شما کتاب و کافی رو بیار ما منابع کافی رو به راحتی اگه حدیث خانی ما کافی بود من تو هر حدیثی منابع شوخ که این از کتاب و سلات حریزه این از کتاب صلات حلبی این از کتاب صلات ابن ابي یا این محتمل ابن ابي عمر باشه یا حلبی باشه میشه خیلی راحت البته با درصد خطای در 20 درصد اون اون نه راحته ولی این سخته چششی سخته هم موضوعاتش هم اینکه راویانش رو خیلی نمی‌شناسیم و تو منابع نیست خیلی خب بریم تو دلالت بحث تو این چند دقیقه که باقی مونده پس آ این حدیث چنبندی کنم اعتبار سنجی رو بر بریم تو دلالت از جهت اعتبار سنجی این حدیث از جهت رجالی نرم افزار نظرش اینه که ضعیفه ولی من باز یه راههایی براتون عرض کردم میشه پیگیری کنید ببینید میشه وثاقت این آقای فیروزان رو دست آورد یا نه نه ضعیف میشه از جهت فهرستی من رو ندارم نمیتونم تشخیص بدم این کتاب چی بوده اگر بتونید تشخیص بدیم مثلا کتاب عبی نصر بسنتی بوده این حدیث از اون نقل شده و اونم کتاب مشهوری بوده لذا زعف حتی بعدی ها هم مخل نیست چون میگیم کتاب مشهوره کتاب مشهور کسی نمیتونست دست به توش ولی نتونستیم این رو نمیتونم من از جهت اخباری ها اخباری ها این رو قبول دارن دیگه چشی رو قبول داره اخباری نو معید میدونه قبول داره اینو اما از جهت اینکه اطمینان به این روایت پیدا بشه یا نه اون همه موارد رو باید ببینیم من جمله متنش رو باید ببینیم محتواش رو باید ببینیم همه اینها رو که دیدیم میشه گفت این حدیث سادر شده یا نه چه با توجه به متنی که داره و الان نشونتون میدم این مضمون حالا به عین این هیچ جا نداریم اما با این مضمون در روایت مختلف حتی در کافی و هم هست لذا اطمینان حاصل میشه یعنی مانه نیست میتونید رو میتونید بگید یا از روش مطب استنباد کنید مشکل نیست خیلی خب حالا متنشو رو بخونیم من یه احادیث مشابه هم باید میزدیم البته که منابع رو ببینیم احادیث مشابه این حدیث پنج کشی این ور مشابه ها شست و پنج تا مشابه زده براش ولی گول نخورید مشابهش به خاطر صد رو زیلشه ببینید اولیش بهاره از کشی آورده خب این که به دردمان نمیخوره بنادل رو بهار اینو به دردمان نمیخورن نمیخوران سفینتل بهار وسادشیه هم که از همین چیزا آورده از همین کشی آورده الحیات منیت المرید وافی متوجه دیگه الان من دارم چیکار چرا اینا رو رد میکنم ها یعنی نمیشه گفت آقا این حدیث پنجم کشی رو دو نفر نقل کرده یکی شهید ثانیه هم چششی نمیشه گفت تو شهید از اون گرفته یا از رو کافی یا از یه منابع دیگه گرفته اینا منابع نیستن از قرن پنج به بعد معمولا منابع نیستن وافی لسان آن لسان و لرب برای ما قابل تحمله اگه گفتید چرا؟ خیلی قدیمی نیست این قرن هفتوم اشتمه به نظرم لسان و لرب نه لسان العرب هشتوم ابن منظور لسان و لرب. قرن هشت قرن هشت خیلی دیره ولی از یه جهت دیگه برای ما موضوعیت داره اونم اینه چه این حدیث رو اهل سنت نقل کردن اهل سنت فقط بعد ببینیم چه گرددش با این حدیث یکیه مقایسه رو بزنید فایدهش چی شد یه حدیثی رو که مضمونش خوبه اگر ببینیم اهل سنت هم نقل کردن اینجا یه ذره زر ظریفه بعضی وقتا نقل اهل سنت حدیثی رو چه حساسیت خاصی توش نیست این ممکنه ما رو به اطمینان برسونه آه ببین ما ببین اهل سنت هم نعم کردن پس معلوم میشه اینو پیامبر فرموده حالا ببینیم چقدرش یکسانه يحمل هذا العلم من كل خلف ادوله ينفون ينفون عنه تحریف الغالی ونتحال المبتدی ونحول الجاهلین لسان اینجوریه بود اهل سنت اینجوریه بود و حظ دینه این دین میگه اون علم رو میگه فی کل قرمه ادولون طربن مطلب یه چیه غیر از اون دین و علم پس اهل سنت اینو نقل کردن این مهمه اینو باید داشته باشید بهار فصول مهمه تفسیر امام آه. تفسیر امام عسکری هم منبعه این منبع یعنی میتونیم بگیم آه. دو جا نقل شده تفسیر امام اسکری و چشی کتاب <تصفح> اون یه بحث دیگه است که معتبر هست یا نه هیچ کتاب غیر معتبری رو اینجوری کلن نمیشه گذاشت کنار. هیچ کتاب غیر معتبری رو کلن نمیشه گذاشت کنار. همونطور که هیچ کتاب معتبری هم کلا در نمیشه. اصلاً دربس نداریم تو علوم حدیث. در مال همین تاکسی ها اسنپ و ها این تو علوم حدیث دربس نداریم. تفسیر امام اصغر رو اگه به این نچرسین که کتاب خیلی ضعیف و غیر معتبریه، حق نداری بذاری کنار. چون توش مطالبی هست که هیچ جا نیست. و معتبر در معتبرم هست اینو داشته باشیم مطا دیگه اونها موضوع بحث ما نیست دیگه بله نه نه کتاب لغت اینجا برای من مهم نبود ها. لسان العرب کتاب حدیثی نیست وقتی لسان الالرب نقل کرده معلوم میشه که از کتابای حدیثیشون نقل کرده این در واقع برای ما یه پول میزنه ولی لسان خودش کتاب احل... چیز نیست حدیثی نیست من اونجا دیدم فهمیدم که اهلستانت این رو نقل کردن که این از اونجا داره نقل میکنه آره حال کتاب احل... چلامیشون معلوم میشه که اون رو ناقلیشون نقل کردن دیگه مثلا من یه زمانی اون بحث نکاح تو شرع لمه نکاح میگفتم یه روایتی هست که همسر ازدواج میکنید از یه خانواده خوب بگیرید نمیدونم گلی در لجن و اینها نباشه یه هم روایتی بود من اونو بررسی کردم روایت رو دیدم تو شیعه خیلی نقد بعد دیدم تو سنی هم خیلی نقد شده خب معلومه دیگه یقین پیدا میکنیم که پیامبر این رو فرموده هم سنی ها گفتن هم شیعه نکته حساسی هم نیست مثلا خلافت و سیاسی و اینها باشه هم نیست خب اینو رو تمام کنیم بعد دیگه کنم وقت کم مونده تفسیر امام اسکری توباللزین هم چما قال رسول الله یحمل حازل علمه من کل خلفه این علم گفته دوباره با اون لسان العرب با اون سونیا یکی بود بقیهش دیگه نه خیلی خب تفسیر امام اسکری کافی اها این هم کافی روایت رو پولینی نعر کرده ببینیم با چشی چقدر فرق داره بذارید اصلا هم مقایسه رو ببینیم یحمل و حازدینه کافی یه صدری داره اون صدرش تو روایت چشی نیست گفته ان العلماء ورثه الانبیا و ذاكن الانبیا لم يورثوا درهما ولا دینارا وانما ورثوا احادیس من هم ف من اخذه بشاین من ها فقط اخذه حذن وافرن فن زرو علم کم اما من او فا ان نفی نا اهل البيت فی كل خلافن ادولا جنفون آنها تعریف القالین و انتها المبتلین و تأويل الجاهنی ببینید زیل حدیث با این حدیث چشی تقریباً هفتادشده درصد یکسانه و به خاطر این صدرش هم اون حدیث مشابه زیاد بود خیلی خب حالا ما بریم اون مت رو یه بار بخونم خدمتون دیگه از این حدیث تقریبا دیگه ما رد بشیم رجال کشی خب یحملوا حز دینه فی قرن این دین را در هر قرنی آقا الان این دین تون یکی حدیث علم چیز بود علم بود حالا من ترجمه کنم چرا علم احتمال ندادن علم ها احساس میگه علم هم میتونست باشه این پرچم را نه چی زود میگی نه بعیده چرا بعیده <تصفيق> این علم را یعنی پرچم را پرشم دین را ببینید من نمیگم حتما قسم بخوریم میگم اون وقتی اون احتمالش هست چرا اینجا اصلا مطرح نشده شما اگر میگید نه به هیچ مثل ایشون میگید به هیچ عنوان نمیشه آره اون دیگه حله اما اگر احتمالشو بدید خب باید اینجا ذکر میشد یحمل و دین آخه مخصوصا که این کلمه دین هم قهرینه است قهرینه است علم با دین خیلی فرق داره خب یحمل و حاضد دینه این دین را در هر قرنی ادول ادول جمع عادله، ادولی عادلانی هم می کند این دین در روی بر و بر برشانه های آدلانیست او رو حملش میکنن ینفون انهو که محافظت میکنن از این دین با این تعبیر گفته نهفی میکنن از آن تعویل مبتلین را تعویل یعنی برگرداندن یه چیزی گفته شده اینو برش میگردونه به یه معنای دیگری تعویل قرآن هم یعنی همین یه دهی مبتلن میخوان باطل کنن میان معنا رو تعویل میکنن به یه چیز دیگری این عالم نمیذاره این عادل عادل بگی عادل نمیذاره و تحریف الغالین اونها که اهل قلوب و اونها میخوان منحرف کنن دین رو این عدول نمیذارن و انتحال الجاهلین انتحال یعنی یک کسی یک چیزی که مال دیگری است رو به خودش نسبت بده اینو تو لغت هم توضیح دادن مثلا یه نفر برای خودش یه شعری گفته من میگم شعر منه یه شاعری، شعری گفته من میخونم براتون میگم شعر رو دیشب گفتم. اینو میگن انتحال. اونو نهله خودم میکنن. انتحال الجاهلین. جاهلین میان تو این دین یه کارهایی میکنن به خودشون نسبت میدن ولی اون ادول نمیذارن. وانتحال الجاهلین. کما ینفل کیرو خبسل حدیده. حدیده. همون ترچه، بله کوره، شنیدید کوره دیگه. کوره زوب آهن و کوره اینها. کوره آهن رو زوب میکنه آشقالش رو جدا میکنه میگه این ادول عادلان دین رو از این ها و از این ها پاچ میکنن کما فلکی رو خبست حدید رو خبست آهن رو ازش پاچ میکنن ادول کارشون اینه خیلی خب این معنیش اینم بگم حالا عجله شد افناداره. فقط این رو بگم نظر بدین این حدیث چه ربطی به حدیث های قبلی و بعدی داره؟ از چی بگیریم علممون رو؟ از چی بگیریم دینمون رو؟ منازل ناس نزد اهل بیت چی بود؟ اکثر روایت هم بود دیگه اونا که حضرات رو بیشتر قبول دارن از حضرات میگیرن علمشون رو، دینشون رو این چه ربطی به اونا داره؟ باید اون علممون رو از آ از این ادلول باید بگیریم جای دیگه نرید ها جای دیگه نرید این ادلول فقط تکمیل نشد دلیل دلالتش باید اون کافر هم ببینیم تفسیر امام اسکری هم کنارش ببینیم چند تا دیگه هم هست اونا رو هم ببینیم معلوم میشه اصلا اینها به نظر میرسه که خود اهل بیت رو داره میگه فان نا اهل البیت بود تو کافی یعنی سراغ اهل بیت باید برید میشه این رو برداش کرد که ناقص موندی تتمش رو انشالله جلسه بعد اگر خاطرم اومان انشاءالله خدمتون می میکنیم انشاءالله که خداوند مطال ما رو که لباس علم پوشیدیم ما لباس طلبگی و وارث اهل بیتیم دیگه وارث انبیاءیم خدا این توفیق رو به ما هم بده حافظ دین باشیم خودمون عامل دین باشیم به مردم بگیم تحریفات رو ازش جلوگیری کنیم و این دین رو یه خدمتی بهش حداقل کرده باشیم یه صلابات پیش رسیم. اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد. سول. آقا تابل الله انشاءالله. آره جلسی بعد بپرسید. آره جلسی بعد بپرسید. سوال خوبی بود. خب رفقا اسم شریفشون رو من اینجا بزنم تا